حرکت از منطق به سمت احساس این یکی از ارکان هیبنوتیزم هست این یکی از چیزهایی که شما به عنوان یک فرد هیبنوتیزم کننده چه برای خودتون چه برای دیگران باید به خوبی اون رو یاد بگیرید کل داستان هایی که تجربه می کنید, کل ناراحتی‌ها، ها افسردگی‌ها، یا از اون طرف کل انگیزه ها و شادی ها و موتیویشن ها و اینها برمیگرده به این که شما دارید با یه چیزی، با یه کلامی، با یه لحنی، با یه آهنگی، یه حسی رو دارید میگیرید و اون حسه کل وجود شما رو بر میگیره ذهن ناخداغا همراه شما میشه و بعد کلن هیبنوتیز میشید روی یک موضوع خاص اون کسی که توی رابطه اشقیش به فرض رابطهش تموم میشه و بعد واقعا از طرف مقابل متنفر میشه علتش مثلا اینه که یه جمله خاصی رو تو زنشهی مرور میکنه که اون جمله حس شدیدی رو داره میده و بعد چه از همون جمله کل مسیر زندگی این رابطه رو تغییر میده و رابطه به پایان میرسه کلن و نکتش دقیقا همینه مردم ها خیلی خوب بلدن منطقی حرف زنن چه با خودشون چه با دیگران مثلا یا میگن که من نباید برنج بخورم من نباید غذای چرب بخورم من نباید پیتزا بخورم یا میگن که من باید لاغر بشم از نظر منطقی خیلی عالی میشه همه منو دوست خواهند داشت خیلی خوب میشه و این جملات جملاتی یعنی که منطقی هن. حسی برای شما ندارن اما از اون طرف ممکن هست یه زمانی فردی که خیلی اضافه هست هم داشته یک بار به شدت تحقیر شده باشه. تحصیت عشقش، تحصیت اطرافیانش، هم کلاسیاش. و بعد میبینید همون یه انگیزه میشه برای اینکه که اون فرد با صورت خیلی زیادی به یک بار خودش رو لاغر میکنه. وزنش رو کم میکنه. و صحبت من همین هست. شما باید شروع کنید توجه کردن به این موضوع رو که آیا گفتارتون و کلماتی که به کار می برید احساسات رو تو طرف مقابل یا تو خودتون داره زنده میکنه یا منطق رو اگه منطق هست منطق قدرتی نداره منطق زیر 10 درصد از قدرت ذهنتونه و اکثریت وجود شما با احساسات با انرژیها برافروخته میشه برانگیخته میشه شما با احساسات قوی میتونید خودتون رو نجات بدید یا اینکه خودتون رو به دام بندازید به بدبختی دوشار کنید و کسی که خودکشی میکنه در واقع وارد یه تونل واقعیتی شده که کاملا درگیر حس بی ارزش بودن یا ناامیدی نسبت به زندگی و همه اینها است باعث میشه که بره خودکشی کنه خودشو واقعا از اون بالا پرت کنه پایین که البته بدیهی انجام این کار شدی تونل واقعیت خیلی قوی میخواد حس بسیار قوی میخواد که بوت چرت خاصی رو داده باشه اما بهش از امروز بیاید دقت کنید ببینید چقدر از حرفایی که به دیگران دارید میگید و میخواید مثلا به اون حرف گوش بدن عمل کنن چقدر از اونها احساس داره توش احساسیه و چقدرشون منطقیه اگه دارید حرف منطقی میزنید به دیگران مثلا دارید میگید سیگار برات مضره و بعد تجرب میکنید که چرا کمکن اون آدم به سیگار کشتنش ادامه میده علت واضحه چون دارید منطقی حرف میزنی و یا این خیلی هاتون سعی میکنید احساسی حرف بزنید ولی اون احساس مطلوب نیست یعنی اون احساسی که باید با رو و شما تولید نمیکنید تو فرد مورد نظر و این چیزی که باید بهش دقت کنید یک منطقی صحبت نکنید احساسی صحبت کنید دقت کنید لحنتون تون صداتون انرژیتون آیا داره حس و منتقل میکنه یا نه و دو اینکه آیا همون حسی که میخواید داره منتقل میشه و آیا اون حس انرژی کافی رو داره برای اینکه اثر بذاره روی یک فرد یا نه به این دو حتما توجه کنید